و حاله طایفین از و لنه تو داری مرسو على عزایت نجمعی اللهم احفرنا جمیعا مشتردی مرحمنا به رحمتکی بود که در باقی به اصطلاح وارد شده یکی از این رضایت رضایتی بود که مظلوم کلینی در کخاب شریف کافی آوردن توضیح اجمالی عرض که صندت خیلی افحام داره اصولا وقتی افحام های پراغانی روییی سندت رویی داره میشه خیلی اصطلاح سر میتونیم باز صحبت نکنیم مشروع صحبت چون خیلی ابهام شدیده یعنی ابحام تدیش شدید میشه دهیتی که حتی مثلا الان ارزگردم آن که مثلا با ارمان شراخ کافی یا ها نمیشه. مثلا علی محمد رو به دو نفر میزن یا است یا الان کلینی که دایی کلینیست مثلا وقتی این اینجور شدید میشه احتمال که کسی هم باشه هست است مثلا مفهول باشه کلا ایشان یه حسکر محلیس شماره چهار از باب از عباب آداب الهمان شرط آرابی دستانه صفحه صد و جلد دو و هر حال گاهی ابهام در در فرد دستان فراوانه و مثلا این اسم هم آمده حالا اون کیه درست نبید یه مشکل دیگه هم این که مرهومه صاحب وسائل و یه اسمانی که در سنر یکمی کوتاه کوتاه میکنن حتی از کتاب کافیال هستی ما باید زیاد ها این هم کار خودی نیست این هم ای که از مؤاخذات و صاحب وسائل این کار کار خوبی نیست مثلا ایشون رو احمد ابن یحیا ایشون در سند حالا نمیخوام بگن این احمد بن یحیا از چی مثلا در کافی از احمد ابن محمد ابن یحیان المعروف به کرد اگه کرد بخون بگیم کرب بخونیم حالا المعروف اینا که دیگه هست کردن مروم سال مسائل احمد ابن یحیان این هست اینه که از معاخضات بر مسائل لذا مروم های بروژیلی هست در جامعه حادیث واضح شدن که از کارشون این بود اون که اون سر همشون که هست بله میسن این کار خوبیه یعنیم الان دنیای علم هم این کار رو میپسنده از کلمه که از امتیازات معجم مرموم استادم هم همینه که اسما رو همونطور که هست میدیسن در کتب رجالی قبلی اینطور نبود از کن راجیب بردی شرحالی شنید مثل احمد محمد ابن خالد برقی مثلا اما آی خویی مثلا در کتاب رجال شیخ یا عنوان آمده همون عنوان آمده. در کتاب فهدست تدریسی عنوان اوله همون آورده در فلسفه فهدست شیخ طوسی عنوان سوم یادمه همونو آورده توی مجموعه شاید دوازده عنوان اومده همه رو آورده هر رو این کار از ذری یعنی خیلی کار خودیه چهی راحت خیلی واضح میشه افراد رو به بخش خودش اصلا تو چیزی که هست بعدش استفاده نمی‌ری یک مساوی هم نگن که این اسم مساوی با فلان باشه در کتابهای قدیم این کار رو نکردن در کتابهای نه هم نکردن شیعه هم نکردن و لذا مراجعه گونا سخت میشه اما با این کاری که مرهوم اا خوبی فرمودن و در هدیثم نظر مبار مرومهای بجرد بود این کار کار صحیحیه یعنی شما دقیقا همون عنوانی رو که در کتاب هست بیارین کم و زیادش نکنید البته با صاحب وسائل نسبت به بعض دیگه بهتره مثلا در کتاب رافی والا از این هم ترخیصش بیشتره که دیگه بدتره دیگه شو ما مثلا حسانی دیداریم که فرسون مرگونه استاد کلینی از محمد بن احمد نرم میکنه. مثلا فرسون امروز سیر مسادقه امروز سادقه امروز این احمد ابن حسن شب داره اینا همه فتحی از احمد ابن حسن تا اما فتحی هست اشون بجه که سرده ببینیسی مثلا محمد ابن احمد ان هستند. و شیخ اختصار یعنی خاص اسو پس فر هم هر کاری درست هم هر فکری را چندان در اینشان مثلا خوب مجرد رنگ دادن کافی نیست انصافش اختصار میکنه که انصافی مسائل رو دقیق بیاره و تصادفا این مؤهل ابن یعقوب ایشون اختصار کرده این هم میشه باز یک نقطه ابهام دیگه مرحوم صدوق خیر از کلینی تعریف کنه مستقیما از کلینی نه با واسطه یکی از مشایخش میشناسیم ایشون احمد ابن محمدنی ابن نیخیر به برد آنی دارنه. آنی دارنه. کرده برد من نتونه ملکب برده چیه ایشان ملاقات به چیه این که ایشان هم عبارت صدوق رو دقیقا نیورده و هم عبارت کلیم رو این کار الان مطلوبه یعنی مطلوبه که مثلا ایشون دقیقا عبارت صدوق رو هم میابرد تا روشن بشه که آیا صدوق چه دخل تصرفی شده یک تا لاعقل روشن بشه نسخه ما با نسخه صدوق چقدر فرق داره لاعقلش این دیگه خب ممکنه ما بگیم اصلا نه بردش درست نه کردش ما نیم فهم بود منم واقعا نمیدونم لیکه این ابردن عبارت خیلی لازمه بردشون فهم و رواه و صدوق کتاب اکمار دین انا علیه بن احمد درقار انا محمد بن یعقوب ای اختلاف مختصه رو بیانه نه که بعد از این اصولا حتی مصادر تولی من اصطلاحاً به این جور مصادر میگم مصادر تولی ما از مصادر تولی که این که مصدر دوم عین مصدر اول باشه مثلا در کتاب کافی هست بعد از صدوق از کافی نه هست یعنی این اما اگه در کتاب کافی و در محاسن بغیه آمده مصدر دیگریه این می مصدر ارزی در مصادر تولی هم به نظر ما عبارت به اینه بشه چون تأثیرش اینه که این دوتا نخنص نسخ محضر را می توانیم بشناسیم ما یه نو ساعت کافی داریم یه نو ساعت کافی هم در اختیار طبوع بوده که ایشان مهم کرده برای که تمانتی علمی افتدا میکنه که دقیقاً آورده بوده چون اینگاهی بعد یک فکر باب میکنه برای مشکلات دیگه حل میکنه این دو تا محضر یک محضر کدیس هزه رفتی دیم حال الهی هم نداره ب چطور مرحوم کله نگاهی این روایت اینجوری رو میاره که خیلی ابهام هم شدیده در سند مثلا محمد ابن خدایی محمد ابن خدایی بکرسته نمیشه ولی مثلا چرا اینجور سنده که بیشون عوردن البته این سند قبل از این, سؤال این مشکل اساسی دیگه داره که اون روز اشاره کردم بعد مراجعه کردم این سند الان در اینجا محمد ابن اسمایل ابن موسن جهتره هر در کتاب فقیه با این اسم در کتاب کافی دو تا روایت از علی بن محمد بوده با این اسم علی محمد ابن اسمایی ما هم دقیقا نمیدونیم اگه الان خود من هم واقعا نمیدونم که این محمد ابن اسماییل ابن موسر ابن ما چون اسماعیل پسر موسر ابن جعفر داریم این مسلم ایشون هم اولادی داشتن رفتن مصر لیکن حالا ایشون علی بن محمد مصر نمیدونم مرمون نجسه داره سکنه هوا و هولده هوا به مزم به توزه هاش یه در دو مورد کافی هم داره محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم هم موسی نجه همتن از همیشه هم علی ابن محمد اده هم گفتن این طرح سخت داره سعیلش اون خب اکش هم می اون یکی دیاره داره سعیل خدا هم نمیدارم کده بگیشه هسته فقط یک ورد میکنن که محمد اب که پسر ابراهیم باشه که ابراهیم پسر هست، این در کتب انصاب سیازتش محله اشکاله اصلا اگر این باشه میگم از با میکنه این سنر کردن در کتاب کافی و در کتاب اکمال و دید محمد ابن اسمایل ابن موسف مجرد الان این اما اگر اون دو مورد دیگه که ابراهیم واسه باشه چون هنز اون سال دو تا ابرالین دارن یکی ابرالین اکبره که اونو اولاد نداره اونو جزء انقلابیون بوده ایام عبو سرالیو در یمن دیار کرد. یکی ابرالین اصغره که دو تا بچه داره اونو جهفر را توی خون نیست و در کتابه انصاب تصریح کردن که یعنی شخصی به نام اطماعیل گفتن پسر این آقا هستن پسر ابرالین اصغر اونا تصریح در که این آواز نصبش ثابت نیست البته بعض از نصبها هم گفتن چرا ثابته یعنی نصب این اسماعیل محل کلام بوده اکثریت یعنی گفتن این آب رسر ابراهیم نیست اون ابراهیم دو بچه داشته اسماعیل البته اسماعیل یک بچه داشته نه محمد محمده اسماعیل از این اولاد زیادی منتشر شدن و اینها ها خودشون سیدی درستن به نصابه هم اختلاف اسماعیل این واقعا سید هست یا سید نید اصل از سیاده به پدر اشکال میده. چند نفر تو بیاره امروز و طالب داره چند نفر قاید که این نید ثابت نید نصابه اما بعضی هم گفتن نصابه اسمایل پسر ابراهیم لذا اصلا این جورت اصالی که این مقدار ابهام داره یه مقدار با من در ما مشکلی یعنی ابهام وقتی دیگه اینجا یه سوالی که پیش میاد خب چرا کلینی اینجور رو رویت البته یه نقطه همه هست بکنم کلینی این رو به عنوان دلالت بر امامت کنم چون این بابای والدیه یه ریدی رو پیش هستر میبورد هستر میمورده مهری بوزده این پیش هم جهنه آورد تا مهادی امام هست کرده اون میرهنه اون ریگ رو مهاد کرد برای عنوان بابش برای محرفت م اما مرحوم صدوق این روایت در کتاب کمال الدین در اثبات طول و عمر امام زمان اشتباه نشی دو تا حادثه می‌خاست ببینیم با واقعه ولبیه مثلا نزدیک 20 سال عمر شده و ممکن است که امام زمان خب از این حرفا اصولخه اون امامین با این عزاد نظری فرمیدن که عمر طولا نکشد به خود امام در در کمال دین مرحوم صدوق به مناسبت طول و عمر امام زمان قسم این واقعه رو از کتاب کافی نهبکن این البته هست یه بحث طولانی هم داره از کردم این از زمانی که ما به اصطلاح تقریم حدیث وارد بحثای شیعه شد خب خواهی نخواهی این تقریم یا ارزیابی تو کافی هم آمد دیگه من از کل از سالهای 150 و 160 ارزیابی حدیث در اهل سنت آمد یعنی شروع کردن این سقه اون بیده سقه خوب دقیق از زمان موسر نجمع پنجه سال بعد عملا توی حدیث وارد شدن لذا مثلا بخایی صحیحشی نوشت ارزیابی شد این حدیث صحیح این حدیث غیر صحیح صحیح نوشتن شروع کردم به صحیح نوشتن روی همون ارزیابی در میان شیعه این بحث ها از وقتی که به این عنوان رجالی وارد شد اواخ هفتم و وال قرن عواسط قرن هفتم زمان مار بان قیا بکن اون قرن دوم ما های قرن هفتمی د رد عملا هم که ارزیابی وارد شد عوایل قرن هشتم الامه دی اولین کسی فت این حدیث صحیح ان هدث ضریف این الامه ت این البته لامه ل در این سام مختلف لاغل من دیدم بقیه کتابیشون نمیدونم بیشترین حدیث را هم از تحضیل نحبه میکنه خیلی کمی و از کافی چی تحضیل در اختیار شده هم رویشون هایی که جامعه در بخش فقط از تحضیل, تحضیل نم اولین کتابی که ما رسمن داریم که راجعه به کافی رسمن ارزیابی رو کرده نرات و عبوده در نیاز یا هم یا اول دوست قرن یادده همه ایشون میره بود اولین کتاب روید پس ما مثلا اگه بخاری حساب اون عرضیابی که قرن سوم نیمه قرن سوم. ما قرن یادده هم راجب کافی راجب کل به کافی اولین بار که این عرضیابی حدیث آمده اون زمانه صحیح اون حسنان زعیف اون پلان البته خود مرمون مجلسی اخباری مسلک و حتیبی دنبال این نیست و هم بعضی ترجه نکردن شروع شیعی جانگه کنه عمل مشبور اشاره به همه شون با مبانی خودش نمیزادی دقیق کرد. از اون زمان وارد شد بحثم شد که هایی کاپ درست هست سنه من نمیخوام این بحث روی شاش بشن اون وقت ایشون آمدن کتاب کافی رو بر اساس همین معاییر تقسیم بندی کردن از زمان مجلسی و از کردم من خود رو چیز سرعتی دارید خیلی, خیلی, خیلی کنزد مثلا احادیس شد. که مرحوم مجلس در میرآتش بقول تضعیف کرده یه توضیحاتی راجع به اونا داره که اینا روی مبانی مرقومه کلیمی یا مبانی قدما معتبر بوده حالا این مبانی است که علامه در رجال پای بزاری کرده روی این مبانی ضعیف میشه اما یا حسن میشه اما روی مبانی ای که این اعتبار بوده سه‌بند اجمال قصه، اجمال قصه. اینه که ظاهرا مجموعه شواهدی بوده که اینها وصور پیدا میکردن البته شواهد وصور یه مقدارش منذبهه خالی نخواهی مثلا در کتب مشغوله باشه مشایخ نهار کردن با زواهده قرآن بسازه مضمونش مکرر باشه و ضعیف باشه مکرر باشه یه مقدار زواهد منذبهه گالی و با باز زواهد شواهده نمزی منذبهه این حدیث رو باید شواهد شوارد اگره منطبه زیادی بگرسی کنید یعنی وقتی ابحام به این درجه زیاده که اصلا کلن گیر داره احتمالا نقطه اساسی من نمیدارم از من الان نسبت نمیتونم بدم. احتمالا چون بالاخره مسئله دوازده امام و سبوت اونها قدیه بوده مربوط کلی از یعنی به بودن مکلبش و این روایت قبول ظاهرا اینطور ظاهران این طور بله. ولی علم این یک نکته نکته یک نکته دیگه اینکه که ممکنه این حدیث در مصادر دیگری بوده جاهای دیگری بوده شواهد دیگری بودی دی که الان به دست ما نرسیده که شاید اگه اون شواهدن به دست ما میرسید مثلا برای ما ارزش داشت یکی از اجائب در مادین حدیث من هنوز هم نمیدونم من خیلی مغییدم که مسئله در وقتی مسرح میکنم مقضار اون بقول خود من صورت ذهنی خودم رو بگم آیا یقینه؟ افرینانه؟ مرحوم صدوق و خیلی هم عجیبی که اینجا دیشان حضورت خب عجیبی چون رفتی لحظت به لحظیه نداشته اینجا نرمه کنم که کتاب کافی مطبوع نیامده مرحوم صدوق بعد از اینکه این حدیث از کافی نرمه میکنه البته من من پیروز کردم، صدیق واسعه شیناشدین کلی محمد نه، محمد بن احسام کلینی است که این آقا هم نمی‌شناسید. صدیق از سه چهار نفر از مشایخ قم از کلینی نر نمی‌خواد. کلا مجموعه نه کلا ایشون این مشایخ رو نمی‌شناسید. این همین علی احمد دقاقی که یادت باشه اینا مشهورترش اون محمد بن محمد بن احسام کلینی است. او اونم نمی‌شناسید. من ذکر کردم. در اینجا بعد از این نقلی که از کلینی کرده که این همین نقلی که در کافیه بعد این طور داره محمد ابن محمد ابن اسام رضی الله عن که پریه ایشان به کلینی قال حدث محمد ابن یعبوب ال کلینی که از کلین هم این اصلا در کتاب کافی نیامده هنوز منم نیم فهمن. چی شده نیم فهمن. قال حدثانا علي ابن محمد از سبر مشهور بین رجالی هایی که از دو نفر دو نفرش هم قابلیت موجود موجود. یا علی بن محمد ابن بنداره یا علی بن محمد علان کلینی که دایی ایشان قال حدثانا محمد بن اسماعیل ابن موسر نجفر در اینجا هم اسماعیل هست یه ابراهیم اسمش نیست شواهد هم نشون میده که این محمد بن اسماعیل اگر اون باشه قابل اعتماد بد نیست حالا اجمالا جزه امانتوزایی سیگرسه میشنسی قال حد دست هم یه عبی اینجا اینجور داره اصلا اون سهل عجیب غریب که اونجا بود اون سهل خیلی عجیب غیره بود احمد بن قاسم احمد بن محمد ابن یهیا ملکم به کرد ان محمد ابن خدایی بن عبدالله ابن یع... ایوب، ان عبدالله بن ع در کتاب فقیه آمده هشام خیلی اسماعی عجیب قریب این که اصلا عوض میشه کلان اینسان من که نمیتون من رو چیدون سردر نمیارم. قال حدثمی محمد ابن اسماعی تا اینجا مشترک بازن قال حدثمی عبی این عبی اگر باشه اسماعی فیزن موسید رو قال ان عبی این خود امام کازمه موسید رو جهبه این عبی امام صادق جعفر ام محمد این عبی محمد ام نه امام باقر، از کن افراد فراخت که اجیب امی واقع اینه که من حیل میگم اگر یک مطلبی و الان در کافی دیدیم به همین موجود نگاه نکنیم با اولا معروف واقع درگار از خواهما میگن یه استعلاق یه همونتان اینه اگر در ذریع در اون اویانوسای کوریه نهد تشیا و که کم چینو چون کویه یک دهامش بالا دهامش توی میاد توی داریم سر کویه خونه گیرو مثلا 5 مثلا میتونیم یک به بیاریم مثلا اینطوره بزرگان ما یک سلامش گیونه نمیشه گله نهاد بودن درسته چه درست کار مشکل ما این این سرد چیه من کنم اون که خیلی در و داغونه محمد بن اسماعیل که اسماعیل باشی انا ابیه موسی بن جعفر انا ابیه جعفر بن محمد انا ابیه محمد علی علیه أنا بن علي علی السلام. مسلام برد انا حبابت الوالبیه ده آلاها علیه ابن الحسین حضرت سجاد برای این حبابه والبیه دعا فرمونه فرد ده علیه ها شبابه ها فعشار ها به اسریهی حضرت به انگوشون اشار فرمونه من مناسب درست نیست را ف جوانم جوان فحازت در وقت و ولها یومعز محصول و سراسل عشر سنه سر و سیزده سالشم بود حالا این, من... این... تا اینجا منشون مقید که کلا کلن در کافی تا اینجا این مثل ایشون عورده بقیه چیزی نگه چون قصه حباب والدی و این هست مفصله تو این قصه الان یه حاله آیا واقعا کلینی اضافی بر این سنده عجیب غریبی کرده نرخ شده این وبارت از طریق اهل بید داشته این آیا واقعا ثابت در کافی بوده شما محمد ابن محمد ابن اسان، واسطه است بین کلینی و صدوق این مشخصه شما آنان تولید صدوق نگاه بکنید نسبتاً عدد محتنابی از روایت کلینی رو ارز کردن دیگه موجود شما درست شدن مغمون صدوق در کتاب فقیه اون جایی که اسم برده حدود 6 تا 8 درواد از کلینیه اسم برده محمد یعقوب البته گاهی روایت نقد میکنه معلوم از کلینیه اسم مثل آخر مقال از فاده تو کافی هست نه اون جایی که اسم برده محمد نعبو جاییی 6 تا 8 6 هست چی تا 7 از 8 تا دارم و یکیشم قبول نکرده اما در کتاب توحید بیشتر بوده. بازه آن اگر بخن ربارت کلینی رو م... یا صدوق رو از کلینی ببینم تو کتاب توحید اونجا زیاد بوده. از توحید خود کلینی هست از توحید کلینی هم یه این حدیث در کتاب الهجه مقوم کلینی هست لیکن این حدیثی که الان برای شما کندم کلم در کتاب کافی نیست این سنده هم دیگه بیشه کلام بودی از زمین تا آسمان فهم. همه اهل بین کن حالا پرسیدن امام کاظم است ولی امام کاظم بعد یک خود این موسی مجازا و امام صادق و امام باعث خیلی هستیم که فکر شده از آن هم شیخ صدوق چنین اشتباهی نمی‌کنه که نسبت بده این که بوقاتی که نجات آیا اشتباهه آیا در هم کلینیلی نصبی جلس کافی این روایت تو اورد او جنگی اوردی؟ یعنی کلینی اون نصحی مفصلی از حبادوی والبیه این سند خرابی اون سند نیست که الان ما خوندیم اونی که توش ریشتراشی دار اون اونی خیلی سند این روادن ها خیلی سند خراب نیست اون خرابی که تصور بکنیم نیست ولی علم و اندالله من هم سر در نیادم بهم. خب برونی الان مثلا اگر واقعا منوش این سند دیگه ای داشته سند رسید شباه که <تص> احتمالا سن دیگه‌ست کلنی که خاطرم هست موجود شده خیلی اینم واقعا چون من بنابراین خیلی من حالا چون روزه هوای خیلی خلا مراجعهش اینه تازه من نگیدم به سمازی مراجعه کردم من خیلی تازه و واقعا هم هستم متهیرم وا و چقدر دقت کلنی نشون میده واقعا خیلی خیلی شک خب اگه این باشه هست شما شما دنیای های موجود نگاه نکنید و اون ها هم خیلی مشكله. به بده نانوشته ها خیلی خالص اندی. یعنی اجزاء ها برای تحریر شاید خوب باشه، در حجیت در مشکل خیلی مشکل. چون قسم دوم رو خود از من می‌خوسته نمی‌دونم من واقعا نمی‌دونم کار چه تعارض این چطور شده؟ صدوق هم که قطع اشتباه می‌کنه. و صدوق قطعاً رابطش با محمدت و محمدت به قولیشون رضی الله این احتمالا نشون همون نقطه روی که ما عرف کردیم که این روایات مسادر دیگه داشته بیشه این ها ایشان یک به خاطر یک جهت عورده این نیست که فقط همون باشد ایشون از با این سند مفصل از امام باغر نمی کنه که هزار فهم که پدر من به حوابه والدیه اشاره کردن سن سیزن سالش جوان شد دو مرده جوان شد این تو نه این مهم گند صحیحه اما بومن خرابی نیست اون خیلی دلخواه بود این سند خرابی نیست بهنا همشونه امام زاده انگار ممکنه به غلطشن زاده در رساله شون بحثشون در اینا امام زاده محمد پسر اسماعیل از خراج اسماعی. صهیل از مصدع جبر از ما و ساده از امام واقع سند که سند بدی نیست و شاید یکی از نکاتی که ما الان در کتاب کُلَیلی می‌بینید که حدیث قابل قبولی در حقیقت یک نکاتی اینجوریه که قابل قبوله. ولی علم عند الله. حدیث بعدی هم که ایشان در اینجا آوردن همون حدیثی که ما خیلی مفصل در ذیل آیه سنت الوازمیه حنفیه صحبت کردیم یکجوری شد، صحبت نداره. یک اداب احادیثی که در ما نهو داریم در باب حلق لهیه روایاتیست که درباره باره به اصلا اخذ از لحیه آمده البته مرحوم هستاد اینا ها رو در همین بحث حلق لحیه هم عوردن زد کنند این هم برمیز مجموعه از روایاتی ما که عنوان اخذ اخذ یعنی کتاب کردن ارز کردن در لغت هرم اگر ما وسیلهی به کار ببریم که موی صورت یا سر را از بیخ از بیش از خود خوده خصوصای اتصال کاملا پاک کنه و حلقه گیر اما اگر نه خودی بمانه جدا بکنه بهش جز میگه یا قص که ما میگیم اصلاح کردم بریدن جز در مقابل حلقه یه بحثی هم خوب از اونایی که حج مشرف شدن یا روحانی کاروان بودن این بحثه که بعضی از ماشینای ما با ماشین سرپرشی قائثا قص از سو جز یا تفسیر، تفسیر بشی میگن، اخت بشی میگن جذب بشی میگن حرق نمیگن این بحثی که شما محتلال شده باشین که میگن اگر ماشین خیلی ریز باشه گفت شیستف باشه، میگه، میگن خیلی ریز باشه که دیگه ترور بکنه گفتن اونم به حکم حرق از این در لغت عرب نیست عرب این نمیگه اون اساس حرق در لغت عرب و مثل تیر یا حتی ب جوری که از اون بیه اساسی کلن دیگه در تماسه با صورت کلن پاک بشه اما اگر فرض بشه کتاه یعنی فرض بشه که با یک وسیلهی با دو طرف اون بریده بشه او را فرض میگن هر قرد ریز باشه یا تقصیر میگن یا جلد میگن هر در اصطلاح عربی با تقصیر فرض اصلاح گرفتن یا کوتاه کردن این در بابی که البته مرموم سال و سالا باب شخص و سه ایشون به عنوان تخفیف لهیه گرفتن و تدویر و لعن من, من, من عارضه که کوتاه کردن دو طرف ریش بزن. در این باب رواست گردن یه رواستشو مرموم استاد الان ما فیلم سبایل فقاید رواست صحیح باب فقط همینه ما اون اونی میخونیم بعد برگیر واسه این اون روایت در این کتاب در همین باب شخص و سی عباق و عذابال ما حدیث پنجه به حسن شماره صفحه در این جلد دو صفحه سالو این رو مرحوم استاد از یعنی سحیل دونستن اون سرعیسی در کتاب مرحوم علم ادریس هلی در آخر سرائر آمله محمد ادریس یه آخر سرائب نقلن من کتاب الجامع لحمد ابن محمد ابن نبی نصر بزنطی صاحب رضا علیه السلام قاد و سه از روحان الرجل حلیست لحوانیه خود من لحیته قال اما من آرزه فلاب از آرزه آرزه همین گونه یا لب این قسمت ای که بالاست اینا ها شوال ولی که این هم محمد کلامه که بعد درستان آرز باید همین اسمان که لپ یا گونه است درستان آردن تا پایین نامیم بقوله ما چی میریش پروسوری اما من آرزه فلا بست و اما من مقدمه جلوه لحی فلا این روایتی سید از کتاب سرایل آنواریم و تحبیرشون آخر سرایل نه. کتاب سرایل مثل بعد از کتاب فرش یه عادتی بوده بعد از کتاب فرشی قبل ایشان هم داریم این در کتب حدیث هم بوده من چون دیدم باید چاپ شده توضیحات داده نشه توضیح عرض میکنم یه سنتی بوده در اون زمان الان زمان ما نیست مدت پاس نیست نه زمان ما اون اینطور بوده در کتب حدیث بعد از این که مثلا مثلا در کتاب سلات تهارن ابوابی رو میوردن یا آخرش یه بابی رو که نوادر که روایات متفرقه حالا یا را در سندش بیا یا متنش اشرا اونجا می اوگردن. در کافی این کار شده در کتاب فقیه هم این کار فقیه آخر این کتاب میاره مثلا آخر نکار داره باب نوازل آخر مثلا طلاق داره باب بعضی از خصوص فقیه این کارو کردن نه همه کتاب فقیه مثلا مقنعه شیخ مفید این کرده مقنعه شیخ روزن سلاتش صحب میشه آخری که با این که فکر حدیث نیست نمیشه باب نوازه ادهی از رباسه بود اما مثلا شیشت فضل در مغنهش این کار نکرد برده هم این رست برداشت شد توی شرایه نیست این رستی بوده که ادهی از که تو روشن شد در خود باب فرقی بعد سلات نوازه بعد سلات زکات مثلا بود مرحوم ازن ازریس یک نوادر آخر کل کتاب بگرده باب و نوادر ایشون یه بحث بیگاه نوادر آخر آخر این برای تمام عباقه نه اینکه برای هر کتابی بعد در این باب نوادر نشته و وحیم وحیم مشتم اونه الان مستطرفتون روایات اصحاب گاهی که شونه مستطرفات گاهی که آه... مثلا که اسم خودش بودشته گاهی به تحبیمی آخر سراده در اونجا ایشان کاری که کرده روایت روایت نیاورد نه از مصادر استصراف کرده مثلا از کتاب ابوالد تقرب بقول خودش از کتاب بحریزه نعللا اصلا کتابی کردنش میشه کتاب الجامع للبذلتی شما روایت چی رو خوردید کتاب چند دارا ما تعریف پس یاد نکنه ازش یاد آورید چه بخوردی کتاب رو ایشون استصراف کرد کتاب کتاب حتی من لایم زورتری کتاب حریف کتاب صحاب حریف کتاب نوادر مسنف یا نوادر مسنفی محمد النهلی محبوب کتاب سیاری مرزا که مصدر کار کار خوبیه این کار واقعا چون یه مقدار دیتون روایتی اوزی که در مساده دیگه ما نیست خیلی کار خوبیه اما متاسفانه خود مرمون نزیز در حدیث شناسی قوی نیست مشکل کاریشان این ان تصبانز همونشون قابل بوده به حجره خبر باید نبوده ما در مقابل من موج هر حدیثی که ورده علم بشه شین بسته چیز میتینه البته بحثت عوامی حرف اساسی این کار نشده در کتاب مستطرفا اونی که ما الان تعریفیم در مجموعه مطالعه مجموعه مستطرفا یا نواده ایشون خیلی در خب ای هم بزرد حدیث شناسی متخصص نیست خب بی بیام به بزرگ غریبی یا در خصوصان خاصه بیان نیست تا بعضی بعضی‌ها بودن اصلا فلسفه تبرار کرده. دقیقاً کرده یکی حقوقی و قانونی آزادسازیشون فرام کنن، به یکی هم علاقه داشت گفت نه، خیلی هم علاقه داشت. ولی خب اصولاً یه بحثه هست. در این عیب که خیلی شولا مثلا باید باشه. ایشون در شناخت حدیث تخصص نداره، حتی ظاهراً در شناخت کتاب هم تخصص نداره. موضافاً به اینکه اون نسخه‌ای را که نقل کرده ارزیابی نکرده. این یه مشل دیگه‌ش ما این شو مثلاً از دل چیه تاریخش یه کتاب از کجا گذاشتی؟ حالا خب خود خودی نداره می‌خواین خوشتان نه؟ این شونو خوشتان متناسب فقط ایشون شون یک کتاب رو خوشتان یک بطور نواده مال محمد بن علي معرفی تو به حدی جدّم ابو جعفر توسی شیخ توسیه که از تو این نصب به اسلام میراث علمیش این از اثر مادر نهید دختریه شیخ توسیه از طرف پسر شیخ توسیه ابو علی حبا علی, علی, علی توصی پسر شیخ توصی که معروف است به مفید سانی به او میرسه از طرف مادر. خب به غیر از اون کتاب نسخ بقیهش رو توضیح نداده این راجع کتاب اجماله و خب معلوم هم هسته بعضی از موارد من صحبت کردم بردی از موادن قطعایشون اشتباه کرده برای ما هی جای شبه نداره اصلا رشنان از تو با صاحب و صالب و الباقه نحن میکنن اولا خودشون تحجیر نشه صاحب و صالب و الباقه چون یه روایتش یه روایتش یه نه حسن رزا داره با دو بایدش از امام رزا خب خیلی ت و تعجب اگر کلشم ننوشته بود باز یک چیزی بود. خودش شیخ که مصطفی رغان انشاء الباقر و سال علیه السلام. اون خود الباقر با دو واسطه از امام رضا. موظفند که اصولن ابان تقله اصلا قبل از تولد امام به 6 سال فوت کرده یا به 8 سال. 141 یا 142 ابان تقله فوت کرده. 1351 1352 اصلا قابل دیگه از, از در دنیا فوت کرده چطور ممکن است با دو خیلی تعجب از ما هستن تعجبی از این خودش نوشته آره یه لحظه فکر نکردین آقای که 6 سال قبل از وفات ویلاد در دو فوت کرده با دو واسطه از ما اجازه نگیری کنه مقبول نیست این یک مثالی در این متأسفان نواظری و مصادفات هست که قطعاً با سری نه اینکه احتمالاً مسائل دیگه‌ای کرده حالا بنابراین نا موارد کافی است یه چیزی به نظر من باطله، دیگه ها به نظر ما اونم باطله. یکی چون همین کتاب جامع بزنتیه یکیشون ایشون اونام ال جامعه لل بزنتی اینم ظاهرا باطله. این البته همه نگفتن. اون رو نوشتن دیگه اما اینا نشه به نظر ما اینم باطله. که از جامعه یکیشون ای در این که مروان بزنتی دو کتاب نوشته که از جامعه ای نواده این ما در شهرتی نداری اما این اشتباه شده. حالا یا کسی مثلا این معلومه اینکه کتابی چند حدیث نیست مثلا جا جامع مثلا کتاب اونجا احادیث متفرقه جا دارخواه در ایشون به ذهنش آتیه که این جامعه وزنتی علیه حال اون چیزی که ایشان از کتاب جامع وزنتی نقلی میکنه اون هم باطله یعنی به ذهن ما آتیه این جامعه وزنتی نبوده مرحوم استاد در وقتی که مسئله فقه بحث میکردم گفت این حدیث صحیحه ده حدیث صحیح مقام میده همین چیزی به ذهن درست چون ایشون خیال میکردم طریق ایشون به چون دنبای طریق نبودن گفتون خوب از حساب جامعه وزنفی نرکه در بعدها ما خود من کرارم در درستازیشون شیمده و بعد در نوشته آشون پر راستشون این راه رو ضعیف میدونستن ایشون عقیده شون این نهاییشون این بود کل روایاتی که در مستشرفات ضعیفه الا اونایی که از نوادر مصنفی محمد عل اون هم به خاطره که کنته به خط جدن ابی جدار توسی چون نسخه شیخ توسی چون ظاهرن شیخ توسی نسخه برای خودش نشته خودش نوشته خودش نشته این نسخه را فقط قبول دارن چون شیخ توسی هم به اونی محمده دارن طریقه فقیل داره, داره بقیه را کلن بکنی تدعیف کردن لیکن ما حالا بحثا خود من همیشه عرض کردن من بحث حجیت در چه دوست در چه اول واقعیت واقع‌گرایانه است. ما یه بحثی کنیم این کتاب‌هایی که در اختیاری ایشان بوده، کدومش درست، کدومش درست، کدوم کدومش جا شده، کدوم اسمش غلطه. اون بحث خاص خود شخص کانون جش اینجا نیست. اگر هر کدوم از ما حد به مناسبت هم. این کتاب بازنتی، نظر من اینه، بحث حجیت نظر خود من بدین است که این کتاب اصلا جامع بازنتی نیست. این اصلا مال بازنتیه. این در حدود در این چاپ جت قدیمی که ما داریم که من حساب نکردم حدودی مثلا نیم صفحه بیشتر این کتاب علی بن جعفر اثر جعفر بن وزنتیه اصلا, اصلا بدعتی جزء روات علی بن جعفر نیست این کتاب علی بن جعفر این به نظر من یه مجموعه احادیث بوده متفرقات بوده ایشون درشته که جامعه داره بعضیشون مشایخش رو بزنتی نمی‌کنه اصلا من همهش نگاه کردم نفتونستم بفهم این مالی چی هم هستم نفهم میدم کل اینی که از جامعه بزنطین هم کرد با دقت زیادی بررسی کردید نفتونیم به نزیجه واضحی هم بردست به هر حال جامعه نیست. این چند میدیم به سال چندین یعنی بیش از نفس از صفحه قدیمش کتاب علی ابن جعفر این یکی کم مال علی ابن جعفر این یکی کم علامات چونه سعرز و سعرزون حالا تجربا بر خدا رحمت صاحب مرحومه ابن ادریسه توی اصنا داره و قال علی یا سلطو ایشون فکر که این علی چیه مثلا علی یا نجربه توی این قال ای سلطو سبیری صدا قال علی یا آمده به غذر بودی توی یکی شا آمده شاید مثلا مجموعا نمیدون نگاه که مجموعا 15-16 حدیث سلطو, سلطو توی یکی قال علی هم. و اگرم دقت بکنید خود صاحب وسائل علوی هم... دقت در رواه الی بن جعفی قرب الاسناد انا عبد الله بن حسن بن خیلی واضح است. اصل هم قرب نسخه بود در کتاب الی بن در قوم صاحب وسائل شرح رسان هم اشاره خواسته. رواه علی بن جعفی در کتاب این نسخه بوده از خود کتاب الی بن جعفی در اختیار صاحب وسائل و بهار که بهای اوورده. آورده و حق هم همینه یعنی این کتاب مال علی ابن جعفر ربطی هم به جناب و آقای و بزنکی نداره ده ده ده ده... هم. نه یه مجردت همون همی مجردت نه بریده نه بریده چون نه با شایده چون کم آمده با اینجا فروت کرده باید من از کندم ببینید من اشاره اجمالی می ما یه نسخه صحیح از علی بن جعفر داریم که در اختیار صدوق و کلیگی و شیفتوسی بوده چه هیچ کدوم از این کتب این رو بدنم یک پس در نسخه صحیح قمی‌ها از علی بن جعفر نیامده دو یک نسخه هندی از علی بن جعفر داره که مشکل داره عبدالله نعمت کوثی مشروحش رو قوی ندارم همینش این نسخه داره سه یک نسخه در ضمن یازدهم رشیده به مرحوم ساعت و ساهل و بهار محوم مجلسی محو محو و محوم شهر و راملی تو اون نسخه هم هست محوم ابن از ازیس هم اشتبانه هست کتاب شده ای کتاب جامعه بزندی این پس الان ما پنج تا نسخه محروف همی از علی نسخه دیگه هم از این پنج دو تا نسخه صحیح هم هر دو در کلینی شیخ صدو و شیخ توسی در این ستا مصدر نیامد در گربر اسناد آمده و در بهار رسائب در نسخه که پیش صاحب بهار بوده و صاحب رسائه. این راجعه به تاریخ این روایه حالا این سر این نسخه چیه اونای شرحی میخواد کلید تولانی پس این روایه البته کوی خویی برها برگشتن من توضیح بدن این روایه از که بدن که قبول نکردن اول مطلب قبول بعدها که برگشتن پا آخری امروان معتقل در تریل سال وسائل بله که همه سهی به این راه سوان سهی میدونستن این هم نظر آقای خوبی کسی بخواه به هر حال در جوانی اول کارشون از راه نسخه, بزن. از راه نسخه ابن ادریس رایی میدونستن این اواخه نسخه سال وسائل سهی میدونستن هیچ کدومش درست نیست. صلی الله علی محمد و علیه.